بنده موافق نیستم با اینکه تعبیر دروغین جامعه جهانی رو در مقابل جمهوری اسلامی که دشمنان ما بکار میبرند به کار ببریم کدوم جامعه جهانی؟ کسانی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارن جامعه جهانی نیستن چند دولت مستکبرن <تصفح> که اونها هم عمدتا زیر نفوذ یک مشت کمپانی داران غارتگر قارتگر بدنام بددلند این جامعه جهانی نیست اونها خودشون رو جامعه جهانی مینامند جامعه جهانی ملت ها هستند جامعه جهانی دولت های مظلومی هستند که جرأت و دلیری اظهار مخالفت رو ندارند و اگر فضا پیدا کنند اونها هم مخالفت خواهند کرد جامعه جهانی دانشمندان و اندیشمندان و متفکران و آلمان و خیرخواهان و آزادی خواهانی هستند که در همه دنیا متفرقند و حقیقت رو میفهمند و اون رو ستایش میکنند